مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد در بیان آنکه ثواب عمل عاشق از حق هم حق است عاشقان را شادمانی و غم است. دست مزد و اجرت خدمت هم اوست. غیر معشوق ار تماشای بود، عشق نبود، هرزه سودای بود. عشق آن شعلاست کوچون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سخت. تیغلا در قتل غیر حق براند در نگرزان پس که بعد لا چه ماند ماند الا الله باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت خود همو بود آخرین و اولین شرک جز از دیده احول مبین ای عجب حسن بود جز عکس آن نیست تن را جن بشه از غیر جان آن تن را که بود در جان خلال خوش نگردد گر بگیری در اصل این کسی داند. که روز زنده بود از کف این جان جان رابود. بود وان که چشم او ندید است آن رو خان پیش او جان است این تف دخان چون ندید او عمر عبدالعزیز پیش او عادل بود حجاج نیز چون ندید او مار موسا را سباد در حبال سحر پندارد حیات مرغ کون ناخرده است آب زلال اندراب شور دارد پر ربال جزبزد زدرا همه نتوان شناخت چون ببیند زخم بشناسد نواخت لاجرم دنیا مقدم آمده است تا بدانی قدر اقلیم اله است چون از اینجا وارهی آنجا روی در شکرخانه ابد شاکر شوی گوی آنجا خاک را می بیختم زینجهان پاک می بگریختم ای دریغا پیش از این بودیم عجل تا عذابم کم بودی اندر وحل در تفسیر قول رسول علیه السلام ما مات من مات الا وتمنى ان يموت قبل ما مات ان كان برا ليكون الى وصول البر عاجلا وان كان فاجرا ليقل فجوره زین بفرموده است آن آگاه رسول، که هر آنکه مرد و کرد از تن نزول، نبود او را حسرت نقلان و موت، لیک باشد حسرت تقصیر و فوت، هر که میرد خود تمنا باشدش که بودی زین پیش نقل مقصدش، گر بود بد تا بدی کمتر بوده وارتقی تا خانه زودتر آمده گویدان بد بی خبر می بودم دم بدم من پرده می افزودم گر از این زودتر مرا معبر بوده این حجاب و پردم کمتر بوده از حریسی کم در آن روی قنوع و از تکبر کم در آن چهره خشوق همچنین از باخل کم در روی جود و از بلیسی چهره خوب سجود برمکن آن پر خلدارای را برمکن آن پر راه پیمای را چون شنیدین پند در دروهی بنگریست بعد از آن در نوحه آمد می گریست نوحه و گریه دراز درد مند هر که آنجا بود بر گریهش فگند وان که می پرسید پرکندنز چیست بی جوابی شد پشیمان کس فضولی من چرا پرسیدمش، او زغم پر بود، شورانیدمش، میچکید از چشم تر بر خاک آب، اندران هر قطره مدرج صد جواب، گریه با صدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. عقل و دلها بگمان عرشی هند. در حجاب از نور عرشی میزی هند. در بیان آن که عقل و روح در آب و گل محبوسند همچون هاروت و ماروت در چاه بابل همچون هاروت و چماروت دو پاک بستند اینجا بچاه سهمناک عالم سفلی و شهوانی درند اندرین چه گشتند از جرم بند سهر و زد سهر را بی اختیار زندو آموزند نیکان و شرار لیک اول پند به که سهر را از ما می و مچین ما بیاموزیم آموزیم این سهر ای فلان از برای ابتلا و امتحان که امتحان را شرط باشد اختیار اختیار نبودت به اقتدار مال همچون سگان خوفتند. اندریشان خیر و شر بنهفتند چون که قدرت نیست خفتند این رده همچون هیزم پاره ها و تنزده تا که مردار در, در میان نفخ سور هرس کوبد برسگان چون در کوچه خر مردار شد صد سگ خفته بدان بیدار شد حرسهای رفته در کتم غیب تاختن آورد سر برزد ز جیب مو به موی هر سگ دندان شده. و از برای حیله دمجنبان شده. نیم زیرش حیله بالا آن غضب چون ضعیف آتش که کیابد او حتب. شعله شعله می رسد از لا مکان. می دود لحب تا آسمان. سد چون این سگ اندر این تن خفتند چون شکار نیست چون بنهفتند یا چوبازانند بازانند دیده دوخته در حجاب از عشق سیده سوخته تا کلاه دارد و بیند شکار آنگهان سازد تواف کوه شهوت رنجور ساکن می بود خاطر او سوی صحت می رود چون ببیند نان و سیب و در مساف آید مزه و خوف بزه گربوات سببار دیدن سود اوست آن تحیج طبع سستش را نکوست ور نباشد صبر پس نادیده به تیر دور اولا زمرده بیزره جواب گفتن تاوس آن سایل را. چون ز گریه فارغ آمد، گفت رو، تو که رنگ و بوی را هستی گرو. آن نمی بینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها ای بسا سیاد بی رحمت مدام بهر این پرها نهد هر سوم دام چند تیرانداز بهر بالها تیر سوی من کشد اندر هوا چون ندارم زور و زب تخیشتن زین قضا و زین بلا و زین فتن آن به که شبم زشت و کره تا بوم آمن در این کهسار و ته. این صلاح عجب من شد. ای فتا عجب آرد معجبان را صد بلا. بیان آنکه هنرها و زیرکیها و مال دنیا همچون پرهای تاووس عدوی جان است از هنر آمد هلاکت خام را کسپه دانه نبیند دام را اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو چون نباشد حفظ و زین زینهار دور کن آلت بینداز اختیار جلوهگاه و اختیارم آن پر است برکنم پر را که در قصد سر است نیست انگارت پر خود را صبور تا پرش در نفگند در شر و شور پس زیانش نیست پر گو بر مکن گررست تیره بپیشارت مجن لیک بر من پر زیبا دشمن است چون که از گری، صبریم نیست گر بوده صبر و حفاظم راهبر بر برف زودی زختیارم کر و فر همچو طفلم یا چو مست اندر فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. گر مرا عقل بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی زفر. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زنت تیغ، که نبود جز سواب چون ندارم عقل تابان و صلاح پس چرا در چاه نندازم صلاح چه اندازم کنون تیغو مجن کین صلاح خسم من خواهد شدن چون ندارم زور و یاری و صند تیغم او بستاند و بر من زند رغم این نفس و وقیهه خوی را که نپوشد رو خراشم روی را تا شود کم این جمال و این کمال چون نماند رو کم افتم در وبال چون بدین نیت خراشم بزه نیست که بزخم این روی را پوشیده نیست. گردلم خوی ستیری داشته، روی خوبم جسفا نفراشته. چون ندیدم زور و فرهنگ و سلاح، خسم دیدم، زود بشکستم سلاح تا نگردد تیغ من او را کمال تا نگردد خنجرم بر من و بال می گریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خیشتن آسان بود آنکه از غیر بود او را فرار چون از او ببرید گیرد او قرار من که خسمم هم منم اندر گریز تا ابد کار من آمد خیز خیز نه به هند است آمن و نه در خوتن آن که خسم اوست سایی خیشتن در صفت آن بیخدان که از شر خود و هنر خود آمن شدهاند که فانیاند در بقای حق همچون ستارگان که فانیاند روز در آفتاب و فانی را خوف آفت و خطر نباشد چون فناش از فقر پیرایا شود او محمدوار بی سایه شود فقر فخری را فنا پیرایه شد چون زبانه شم او بی شد شم جمله شد زبانه پا و سر سایه را نبود به گرد او گذر موم از خیش و زسایه در گریخت در شعا از بحر او که شم ریخت گفت او بهر فنایت ریختم گفت من هم در فنا بگریختم این شعاع باقی آمد مفترز نه شعاع شم فانی عرز شم چون در نار شد کلی فنا نه اثر بینی ز شم و نه زیا هست اندر دفع ظلمت آشکار آتش صورت به مومی پایدار برخلاف موم شمع جسم کن تا شود کم گردد افزون نور جان این شعاع باقی و آن فانی است شمع جان را شعله ربانی است این زبانه آتش چون نور بود، سایه فانی شدن زود دور بود. ابر را سایه بیفتد در زمین، ماه را سایه نباشد هم نشین. بی خودی بی ابری است، ای نیک خواه، باشین در بی خودی چون قرس ماه. باز چون ابر بیاید رانده رفت نور از مه خیال مانده از حجاب ابر نورش شد ضعیف کمز ماه نو شدان بدر شریف مه خیال می نماید زبر و گرد ابر تن ما را خیال اندیش کرد لطف مه بنگر که این هم لطف اوست که بگفت او عبرها ما را عدوست. مه فراغت دارد از ابر و غبار بر فراز چرخ دارد مه مدار. ابر ما را شد عدو و خسم جان که کند مه راز چشم ما نهان. هور را این پرده زالی می کند بدر را کم از هلالی می کند ماه ما را در کنار عز نشاند دشمن ما را عدوی خیش خاند تا به ابر و آب او خود زین مه است هرکه مه خوانده ابر را بس گمره است نور ماه بر ابر چون منزل شده است روی تاریکش ز مه مبدل شده است گرچه هم رنگ ماه است و دولت است اندر ابر آن نور ماه آریت است در قیامت شمس و ماه معذول شد چشم در اصل زیاد مشغول شد تا بداند ملک را از مستعار و این رباط فانی از دارالقرار دایه آریه بود روز سچار ما مارا تو گیر اندر کنار پر من ابرست و پردست و کسیف زن اکاسه لطف حق شد او لطیف برکنم پر را و حسنش را زرا تا ببینم حسن مه را هم ز ما من نخواهم دایه مادر خوشتر است موسیم من دایه من مادر است من نخواهم لطف مه از واسطه که هلاک قوم شد این رابطه یا مگر ابری شود فانی راه تا نگردد او هجاب روی ما صورتش بنماید او در وصف الله همچو جسم انبیا و اولیا آنچنان ابر نباشد پرده بند پرده در باشد به معنی سودمند آنچنان که در صبح روشن قطره می بارید و بالا ابر نی معجزه پیغمبری بود آن سقا گشته ابر از محو همرنگ سما بود ابر رفته از وی خوی عبر این چونین گردد تن عاشق به صبر تن بود اما تنی گمگشته زو گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو پر پی غیر استو سر از بحر من خانه سمع و بسر استون تن جان فدا کردن برای سید غیر کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر هین مشو چون قند پیش توتیان بلکه زهری شو شوامن از زیان یا برای شاد باشه در خطاب خیش چون مردار کن پیش کلا. پس خزر کشتی برای این شکست تا که آن کشتی ز غاصب باز راست. فقر فخری بهر آن آمد سنی تا آن گریزم در غنی گنج را در خرابی زنه هند تا زهرس اهل عمران وارهند. پر نتانی کند رو خلوت گزین تا نگردی جمله خرج آن و این، زان که تو هم لقمه هم لقمه خار، آکل و معکولی، ای جان، هوش دار پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تحییه و اجرا کردند.